ای که بر ماه از خط مشکین نقاب انداختی لطف کردی سایه بر آفتاب انداختی تا چه خواهد کرد با ما آب و رنگ آرزت حالیا نیرنگ نقشی خوش بر آب انداختی گوی خوبی بردی از خوبان خل و خشاد باش جام که خسرو طلب کفراسی آب انداختی هر کسی با شمع رخ به وجهی عشق باخت زن میان پروانه را در ازتراب انداختی گنج عشق خود نهادی در دل ویران ما سایه دولت بر این کنج خراب انداختی زین هار از آبان آرز که شیران را از آن ازان لب کردی و گردان را در آب انداختی خواب بیداران ببستی وانگه از نقش خیال تهمتی بر شبروان خیر خواب انداختی پرده از رخ برفکندی یک نظر در جلوگاه و از حیا حبروپری را در هجاب انداختی با از جام آلم بین که بر اورنگ جم شافد مقصود را از رخ نقاب انداختی از فریب نرگس مخمور و لعل میپرست حافظ خلوت نشین را در شراب انداختی و از برای سید دل در گردنم زنجیر زلف چون کمند خسرو به مولک رقاب انداختی داور دارا شکوه یان که تاج آفتاب از سر تعظیم برخاک جناب انداختی نصرت الدین شاه یهیان که خسم ملک را از دم شمشیر چون آتش ترابند آختی